صحبت سارتر بود که اگزیستانسیالیست نیست. آنچنان که نیچه نیز نیهیلیست نبود. در فلسفه رحم را ناشی از ضعف می‌دانست و یاری ضعیف را خیانت به حق که حق یعنی قدرت و بنابر این ضعیف یعنی باطل باید او را کشت. نه اینکه خود پیامبر مذهب قساوت و زورپرستی است. جانش را بر سر دفاع از اسب ضعیف یک گاری که افتاده بود و در زیر شلاخهای گاریچی سنگدل بی دفاع مانده بود فدا کرد. نفاقها و ریاهای معکوس را نمیشناسیم. قاعدتا عادت کرده ایم خوب نمود بدبود را منافق یا ریاکار بدانیم. گاه برخی برعکسند. بدنمود خوب بودند، مؤمن کافر نمایند. منافقان این چنین از مؤمنان و ریاکارانی چنین از صدیقان برترند سارتر نمونه اعلیان است میگوید هیچ چیز به هیچ چیز نیست نه تنها خدا نیست بلکه ملاکی برای خوب و بد نیست هر که هر کاری را به میل خود کرد و خیال کرد خوب است خوب است چون اصلی نیست که هر عملی را با آن بسنجیم و خوب و بدش را تعیین کنیم چون اعتقادی جبرن و طبیعتا به دم قنیمتی و لذتجویی و حفظ خود منجر می شود و سارتر درست به نفی خود برای حفظ اصول جاوید انسانی و رنج خود برای آسایش دیگران حتی به ایثار رسیده است به جایی که هیچ یک از پیروان او یک گام با او نمی آین. پیغمبری که با امتش بیگانه است. در جمعیتش تنهاست چرا؟ یکی از استادان من که سابقه آخوندی داشت اما سخت نواندی شده بود میگفت من از همه شماها فرنگی تر فکر می کنم و از همه فرنگی ها با کهنگی و سنتگرایی مخالف ترم. حتی دهها دلیل علمی و منطقی میتوانم آورد که اوروپایی خوب غذا می خورد و خوب غذا را میشناسد اما فقط از دیزی لذت میبرم فکرم دگرگون شده است اما زائقه هم فرقی نکرده است فکر از راهی دیگر و زائقه از راهی دیگر تغییر می کند زیرا فکر در شرایطی دیگر و زائقه در شرایطی دیگر پرورش می یابد وانگهی فکر زود و گاه ناگهانی منقلب می شود اما زائقه بسیار دیر و گاه هیچگاه من مردی بزرگ و دانشمند و متفکر را می شناسم که سی و هفت سال پیش نخستین کسی بود که در محیط محیطهای مذهبی و سنتی مملکت یک تنه علیه حجاب قد علم کرد و تمام حیثیت معنوی و علمی و مذهبی حساسی که داشت در گروه آزادی زن از قید حجاب نهاد و در اولین مجلسی که به نشانه رفع هجاب تشکیل شد اولین سخنرانی را علیه حجاب کرد و حتی جانش را خطر کرد اما سی و چند سال بعد از آن در دوره ای که زن روز ایران برای محرومیت حقوقی و عقب ماندگی اجتماعی و اصارت زنهای سوئیس اشک میریزد و زنان ما که دیروز چادر و چاخچور و پیچه را برداشتند امروز از حالت عمولی و قید و بندی که داشتن شرت و پستان بند با آنها می دهد رنج میبرند و دامنهای مفقوده میکرو میکرو مینی را در تن خود دامن ماکسی جوب احساس میکنند یک روز خدمتشان رسیده بودیم و ایشان که دو فرزند خورد سال داشتند یکی دختری شش هفت ساله به نام فاطمه و دیگری پسری چهار پنج ساله به نام تقی. در جواب احوال پرسی ما شاگردانش که پسر بودیم فرمود همشیره تقیی که سالت پیدا کرده است. رفتار اجتماعی آدمی تابع روح و احساس اوست که زاده محیط اخلاقی و تربیت نخستین است و افکار فلسفی آدمی تابع اندیشه و عقل او که زاده استدلال و مطالعه و شناخت و علم و تحولات ناگهانی و سارتر که در فلسفه به اگزیستانسیالیسم بی خدا رسیده است و مادیت صرف در روح و احساس یک مجاهد مؤمن و پرستنده است این استنباط من در اینجا نیست اعتراف خود او در کلمات است که خودنگاری وی است جنوغ لفکدو استقو دوپقهبیون کنوقلون کددیوتون دیکت جنو که من ساخته و پرداخته هیچ کس نیستم، جز استروگوف و پارویان که ساخته و پرداخته هیچ کس نیستند جز خدا در حالی که من به خدا معتقد نیستم. این با حرف اگزیستانسیالیست ها یکی نیست، نمیگویم خدا فقط وجود به انسان بخشیده است. و او خود ماهیتش را میسازد نه خدا حیوانی به نام انسان ساخته است و چگونه میتواند ماهیت باشد از انسان به عنوان یک وجود یک بود مشخص و معلوم سخن گفتن ناشیانه است انسان بودن نیست شدن است به قول هایدگر طرح است در این شدن ماهیتهای خدا داده را از وجود خود میزداید و خود ماهیتی به دست خیش می سازد. تا آنجا که می شود وجودی که دیگر هیچ ماهیتی ناخداگاه ندارد هرچه هست کار خود اوست در اینجاست که نیهیلیسم نیچه راست می شود حتی سیر هگلی ایده مطلق که به خداگاهی میرسد رسد راست می نماید و نماید آغاز می, شود. می گویند ابن رشد و سنتو و دیگر متأثران فلسفه بوالی این سخن او را که میگوید وجود برای جوهر ارز است. در تعبیری مانند گل مریم موجود است که درست شبیه این اسناد است. گل مریم پنج پر است. وجود در اسناد اولی همان جایگاه را دارد که پنج پر در دومی. یعنی صفت است، ماهیت است، محمول است برای جوهر گل مریم از اینجا این فکر به ذهن می آید که شاید ماهیت وجود مقدم است من نمی خواهم اینجا بحث فلسفی کنم، کار دیگری دارم می گوید حرف بو علی را آنان بد فهمیدند و او نظرش چیز دیگری است. این حرف یعنی چه؟ ماهیت یا جوهر یا ذهنیت یا مجرد؟ قبل از تحقق وجودی یافتن نیز وجود دارند. چقدر هوشیارانه است، این حرف میر فندرسکی که ذهنیت نیز خود عینیت است، منتها اینی بر گونه دیگر. داشتم چه میگفتم؟ میگفتم که چگونه هرچه بیشتر در زمین میماندم کمتر با آن خو میگرفتم رنج آب و نان و جامه و خانه هرچه کمتر میشد رنجورتر میشدم تشنتر میشدم گرسنتر و برهنتر و بی بیخانمانتر چقدر دوست میداشتم رنجی، فقری، احتیاجی برایم لاقل بفریبی لاقل چند روزی هدفی شود دلم از عشق و از کین پاک بود اما نمیدانم چرا اینچنیں این غمگین بود و هر شب غمگین تر مغرب مرا از زمین و از مردم بیرون میبرد و شب مرا در کتاب و هنر پناهگاهم بود در سیمای دانش و زیبایی آشنایی مرموزی با آن خیشتن زلال و سرکشم که هیچگاه به زندگی کردن تن نمیداد و لحظه‌ای با زمین دل نمی‌بست می‌خواندم و این مرا امیدگونه‌ای می‌داد که اندکی آرامم می‌کرد اما آرامشی نه از آن که دارو و شفا می‌دهند آرامشی که افیون و شراب می‌سازند دانش را ابزاری برای برخورداری نمی‌یافتم در برابر آن احساس زندانی را داشتم که به در بسته سلولش می نگرد زیبایی ها را نمایهی برای لذت بردن و سرگرم ماندن بلکه نمیدانم چه بگویم جاذبه مرموزی پر از آشنایی و و شابندی دل مرا به آنها میکشاند. در برابر آنها احساس زندانی را داشتم که نه در گوشه سلولش شترنج بازی میکند و شراب میخورد، بلکه به پنجره بسته سلولش می نگرد. این بود که دلم به علوم قضایی نمی کشید مگر از اجبار و مسلحت. روحم را فلسفه و عرفان و ادبیات و هنر و تاریخ و مذهب سیراب می‌کرد. حتی در آن سال‌ها که به خدا معتقد نبودم، سالهایی که خدای مروسیم را شکسته بودم و به خدای خیش خدای جهان هنوز نرسیده بودم و اصلا ماورا و طبیعه را منکر بودم، عمیق‌ترین لذت‌هایی که مغز جانم را مینواخت و گرم می‌کرد، خواندن سرودها و متون نیایش‌های زیبای ادیان بود. در الواح سومری و بابلی و آکادی و در متون اپانیشادها و ابستاو، و ادعیه چینیهای هزاران سال پیش و حتی نیایش‌های ابتدایی سرخپوستان آمریکای شمالی، سخنانی می‌یافتم که جانم را خبر می‌کرد. و زیبایی و جذبه احساس می کردم که در آثار برجسته ترین رئالیست رعالیست هم عصر و هم زبان خودم. در زبور داوود و کتاب جامعه و سرودهای اوپانیشاد اندیشه ها و آتفه آشنایی می که با تارهای نامرعی ادراک و احساسم بازی نامعنوس و خیشاوندی داشت و هرگاه از آنها به شکسپیر و بالزک و گید و بن جانسون رو می آوردم، حالت کسی را داشتم که از کنار محبوبش برخواسته باشد و پشت نیمکت مدرسه به درس استاد متخصصش گوش بدهد از مزرعه و کوه و دریا و دشت به کارخانه و شهر و سینما و رستوران بازگردد. دانش مرا هر روز نیرومنتر میکرد و هرچه نیرومنتر میشدم، خداگاهتر و جهان آگاهتر می شدم. آگاهیم بر طبیعت مرا از زندان طبیعت آزاد می کرد و با آگاهیم بر تاریخ آزادیم را از چنگش بدر می بردم و همه رنگها و طرحهایش را از جوهر خیش می و شناخت جامعه بشری آشنایی با جامعه خودم نژاد و محیط و خاندانم مرا از سلطنت اجتماع و سیتره محیط رهایی می داد. و بر آنچه رعیتش بودم سلطنت مییافتم و عرفان و مذهب مرا از من بدر میکرد و هرچه از زیر دستهای نیرومند این چهار آفریدگار خیش خود را بیشتر نجات میدادم بیشتر آفریدگار هر چهار میشدم و چه میداند که در این رحایی ها چه لذتی است هر بار که یکی از بندهای این چهار زندان بزرگ را از دست و پای جانم میبریدم، همچون خواجه نصیر و بو علی در خلوت عظیم خیش از شور پیروزی چرخ میخوردم و بر تخت سلطنت خیش پله‌ای صعود میکردم و بر سر هستی فریاد میکشیدم بر دهانه این تونل خلوت و ساکت تاریخ که انتهایش به سرزمین‌های افسانه میپیوندد. قدرت و شغل داد میکشیدم بر روی این شبکه تارن کبوط جامعه پیچ در پیچی که مرا همچون مگسی در خود می فشرد و میمکیید فریاد میکشیدم و سر در حلقوم خیش فرو می بردم و بر سر این منی که از همه رنگ ها شسته بود فریاد میزدم کجایند شاهان و شاهزادگان که اگر از لذت هایی که در اقلیم بی مرز تنهاییمان میبریم آگاه بودند. برای به دست آوردنش شمشیر می کشیدند. از تاریخ و روشن سهرگاهی که کاروان بشری در فضای مهگون اساتیر به راه افتاد با آنها همراه شدم و همه دنیای افسانه ها و جادوها و اسطوره ها را گشتم تا به مرز تاریخ رسیدم و همه تمدن ها و مذهب ها و ملت های تاریخی را دیدم و شناختم و در همه قرن‌ها با همه زیستم و در همه معبدها نیایش کردم و در همه مکتب‌ها با حکیمان و عالمان و عدیبان و شاعران و هنرمندان هم سخن شدم و در محفل همه پیامبران حضور یافتم و رسیدم به حال شرق را گشتم و غرب را گشتم و همگام با اندیشه و احساس گام به گام آمدم تا رسیدم به تنهایی به قربت، به کبیر انسان گذشته در ناخداگاهی طبیعی و قریزی خیش آسوده بوده است انسان بدوی، تکهی، البته شریف، از طبیعت است اراده داشته است، قدرت انتخاب و اختیار داشته است اما آنچنان که توده های آمریکایی و اروپایی در نظام دموکراسی دنیا یازاد هنگام انتخابات میلیونها آزادی مطلق و بیکرانه ناخداگاه، منجر می شود به شیر یا خط یک سکه قلب. انسان بدوی اختیار را در خود احساس می کند، اما یک احساس کاذب خیال می کند هر هرچ را می خواهد انتخاب می کند. اما را طبیعت برایش تعیین می کند، او میخواهد. در مرحله تعیین شده ای از عمر دو نفر را مجبور میکند که هم را بپسندند و به همسری آزادانه و به اختیار خود برگزینند. به گفته عمیق مارتین هایدگر هنوز من پدید نیامده بود. من از هنگامی به وجود می آید که انسان خود را مستقلا وجدان میکند. قرنهای طولانی گذشته است تا من در تاریخ پدید آمده است. دورکیم آن را به درستی نشان داده است. علم انسان به خودش پس از دیگر علوم طرح شده است. انسان آخرین مجهولی است که دانش بشری کشف کرده است. کشف؟ نه، تر. چنانکه الکسیس کارل بزرگترین انسان شناس معاصر گفته است، هنوز انسان یک مجهول است. دامنه علم تا دورترین مرزهای جهان گسترده است اما در راه شناختن انسان هنوز یک گام برنداشته است. به قول شاندل، انسان خود را از همه پدیده های جهان کمتر و بدتر میشناسد. و از این روست که امروز با اینکه بیش از همیشه در براور طبیعت بزرگ مسلح است در قبال خویش سخت بی‌دفاع مانده است. انسان امروز را دیگر نه جهل، نه طبیعت و نه بیماری خواهد گشت، بلکه خطری که تمدن عظیم و مسلح کنونی را تهدید به زبال می کند، خود انسان است. او بهتر از همیشه می تواند زندگی کند، اما کمتر از همیشه می داند چگونه باید زندگی کرد. این است آن ای که می گفت که سراپا غرق طلا و صلاح است، اما از دردی مینالد که درمان ندارد و من نمیدانم که تا انسان را ندانند کیست چگونه میتوانند از چیزی سخن بگویند همه چیز در جهان برای بودن آدمی است و درد این است که بودن خود برای چیست چه خنده آورند آنها که بودن خیش را در جهان ابزار چیزی کرده اند که خود ابزار بودن آنهاست و چه بسیارند آدمیانی که در این گردونه ابلهان دور میزنند. داستان اینان داستان خر خراس است که از بامداد تا شامگاه در حرکت است و در پایان درست به همان نقطه میرسد که آغاز کرده بود این است آن غار افلاطونی که زندگی نام دارد و تنها کسانی در آن خوب و خوش زندگی آرام و می میتوانند داشت که از بیرون بیخبرند. پیکی، پیامی، صدای آشنایی از آنسو آرامش تاریکشان را برنیاشفته است. در این قار، گیاه و حیوان و آدمی هم خانه هند. پول والری میگوید، برای نخستین بار انسان امروز است که میداند تمدنش فناپذیر است و این بلندترین قله است که فرهنگ بشری فتح کرده است و در این قار تنها انسان است که میداند با گیاه و حیوان همخانه است و سرچشمه همه رنجهایش در همین آگاهی است تصادفی نیست که آن میوه ممنوع را که در بهشت خورد میوه درخت بینایی گفتند میوهی که تا از هلقومش فرو رفت باغ سرسبز و زندگی خوش و آرام و سرشار از لذتش در بهشت قربت خاکی پر از رنج و تنهایی در زمین گشت و این است معنای بیپایان آن حقیقت جاویدی که حبوط آدم نام دارد و اسیان آدم و چه شباهتی است میان پرومته و شیطان آدمی در این خانه دربسته که با گیاه و جاندار سعادتمند هم است، در کنار پنجره یک نگاه منتظر است. نگاهی لبریز از رنج و شوق، در فضای مهگونی که پیش چشم دارد، هر جرقه ای که از سائقه های دور دست فضای درونش را روشن و داغ می کند. و صدای تندری را در دلش می و سمفونی خاطر آمیز و سیراب کن بارانی که در صحرای ساکت و بی مرز دلش که کشت زار های بهشتی است باریدن می و تمام بودنش همچون هلغوم تشنهای در زیر بارانهای اسفندی از لذت مطبوع نوازش آرام می ناگهان پنجره بسته می شود و صدای باران خاموش می گردد روح از خفقان بیقراری می کند و همچون دیوانه خشمگین در زنجیر مجروح و دردمند به خود می پیچد گاه صدای پایی که میشناسد این صدای پای اوست از بیرون می شنود و هوای خفقان آور و ساکت اتاق را از التحاب سرشار می کند و او همچون کبکی تنها که آوای آشنایش را از دور شنیده باشد در قفسش سراسیمه از این سو به آن سو هر بار دیواری او را به دیوار مقابل میراند جانور حرکت دارد اما سر در زمین و درخت از زمین سر برکشیده است اما پا در خاک و آدمی جانوری است که همچون درخت رو به آسمان میروید قامت بلند اسیانی است که از پستی این دنیای کوتاه به ماورا سر برداشته و او را بر گونه خیال و آرزویش سرشته‌اند تا سقف بشکافد و خود را همچون رازی از سایه مهتابی همچون نگاهی از روزنه ستاره‌ای از این تنگ خفه و تاریک جهانی که از همه سو جانش را تنگ در آغوش خشن می میفشرد پشم و پی برنگرفته تا در او سهم روح از تن بیش در باشد و بدن نه ساری استوار و زخیم برگرد یک زندانی ضعیف و زبون که حریری نازک بر اندام دل باشد و از زیر پوست جسمش روح مهاجم و تقیانگر و گدازانش بیرون زند و از ورای این پوشش سبک و لطیف و شکننده آنکه با پرتو بیتاب شمعی که ساکت می خود را دیوان وار به در و دیوار میزند تا رها شود از چشمی پنهان نماند اندامها در او تیغ است کشیده است یعنی که با هرچه هست با هر چه خود را بر او است و او را در خود نگاه داشته است سر ستیز دارد گردن اسیان دارد یعنی که فرسایش هوا و خاک و فضا و زندگی و این دنیا را که از همه سو خود را بر او است و سنگینی میکند نپذیرفته است و با تنبلی و ضعف و خمیرمایگی خود را تسلیم نکرده است یعنی خود را با آنچه احاطهش کرده است تطبیق نداده است یعنی که در قالب طبیعت نمی گنجد در این جهان جا نیفتاده است یعنی می خواهد بشکند ببرد پاره کند بشکافد و در هم ریزد و پرواز کند رها شود او درخت طغیان است گل نفی است در پاسخ سراسر این هستی سراپا نه است بودن او نبودن جز اوست او با نفی تدریجی طبیعت وجود خیش را تدریجا اثبات میکند او رویه سکه است که روی دیگرش این عالم است به میزانی که کائنات پوچ و جامد و کوردل را به نیروی احساس و خلاقیت خیش شعور و احساس و آشنایی میدهد و پدیده‌های ابله انصری را به اعجاز هنر با خود خویشاوندی میبخشد خود را می آفریند، می شود. این است که هنرمند طبیعت را تزین نمی کند، زیبایی خلق نمی کند، خود را پدید می آورد. انسان ها همه هنرمندند، هر کسی به میزان هنری که دارد انسان است و با انکار واقعیت طبیعت حقیقت خیش را ابدا می کند. این است آن دیالکتیک اعجازگری که هیچکس از آن سخن نگفته است، و این است آن روحی که خدا از خیش در آدمی دمیده است آنچه به او آموخته است و آنچه او را مسجود تمام ملائکه خدا کرده است و گناه نخستینش نیز همین است و میوه ممنوعش نیز همین و تبعیدش به زمین نیز همین و خیشاوندش با خدا همین و همدستیاش با شیطان همین و سرچشمه کمال اهورایی و سرمنشأ زاینده رنجش همین اگر خدا ظلوم و جهولش می‌خواد از این است و اگر به بر و بالایش می‌نگرد و از شوق تبارک الله احسن الخالقین میگوید از این داستانی است چه بگویم آن بهشت کجا بود آن میوه ممنوعه چه بود چگونه از بهشت به کبیر افتادیم نیهیلیسم نیچه راست است؟ بازگشت به ایده مطلق من مطلق راست است من به آتمان میرسد و آتمان به برحمن به قول پگی به کودکی و نادانی بازگردیم